أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا وآله الطاهرين خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام داریم صبح خیر عرض می کنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به عنایت الهی از هر گونه بلا و گزندی هم به دور مانید ما در مباحث گذشتمون تا بحر رجز رو به طور کامل خوندیم تا بحر رجز و بحر رجز هم یعنی خونده شد علوان بهرصریع رو خواهیم خون یعنی از سریع ان شاء الله یادداشت کردی برای من که در مورد به لاری نوشته که در مورد امتحان و شیوه اون مبحثی رو بگم خب مشکلی نیست خواهم گفت ولی این جلسه جلسه آخر نیست هفته آینده جلسه آخر هستشون تو خواهر تقنیم آموزشی هفته آینده هم درس هست با وجوب این که امر مجازی است هفته آتی هم چنین حالا انشالله تعالی به موقعش براتون توضیح خواهم داد و خیلی هم جای نگرانی نداره انشالله که همتون موفق خواهید بود اما بریم اما بریم سر بحثمون در بحر سریع بحر سریع مفتاح البحر پس از سریع بحریست که امروز میخوایم بخونیم مفتاح این بحر شلیدش، بحرن، سری آن، ماله او ساحل او، فاعل یعنی فاعلون، مصطفی آلن، مصطفی پس اگر یه موقعی من به شما بیتی رو دادم که تختی کنید اولین تفعیله رو در آوردید مستفعلون دومی رم مستفعلون زود قضاوت نکنید بگیدیم بحر رجز بود چون سومی سو اگه مستفعلن شد مصطفعلن مصطفعلن مصطفعلن مصطفعلن مصطفعلن مصطفعلن مشد رجعت حالا مصطفعلن مصطفعلن فاعل مصطفعلن مصطفعلن مصطف فاعل شبه بهر سري پس ما با تقطیه تمام بیت میتونیم به اونچه که مد نظره برسیم بحرون مبتدا اون صفتش همین باعث شده که نکره بتونه بشه مبتدا. ما لهو ساهلون ما مای مشبهتون به رئیسه عمل نمیکنه اینجا چون جای اسم و خبرش عوض شده لهو جار و مجرور خبر مقدم ساحلون مبتدای معخر ما مای مشبت بليسا ملقا از عمل از عمل افتاد. لهو خبر مقدم ساحلون مبتدای مؤخر این جمله ما لهو ساحلون خبر مفتد است. خب است سریع با سرعت، که ساحل ندارد که او را ساحلی نمی‌باشد بحری سریع که دارای ساحل نیست مستفعلون مستفعلون فاعل بحرون زری اون مالَهُ ساحل و مستفعلون فاعل وهو من الاطهر التي تتالف من تفعيلتين مختلفتين. و این از بحرهایی است که تشکیل میشه از دو تفعیله مختلف. وهو من الابر التي تتالف من تفعيلتين مختلفتين. این از بحرهایی است که تشکیل میشه از دو تا تفعیله مختلف. هما مستفعلون و فائلون که وارد است از مستفعلون و فائلون مستفعلن در دو دوبار تکرار میشه و فائلون در عروض و زر و هبه من العب هللتی تتعلف من تفعیلتین مختلفتین هما مستفعلون و فائلون و یعطی علن نهر تالی و به این شکل میاد مستفعلن علان مصطف مستفعلن فائلان فاعلن خب مصطف فا خوب تغییراتی که عارض میشه بر این به که این تغییرات رو عمدتا خوندیم التغییراتی که تتره اولاهازال بحر، التغییراتی که تتره اولاهازال بحر، تغییراتی که آریز میشه بریم بحر، بریم بحر واریم میشه بعد سری، یک زهاف خب نه، زهاف خب، این زهاف قبلا خوندیم که به تا ای هم که داخل شه بهش میگن مخبونه و هوه هزفل حرف از ثانی از ساکن و این هزف حرف دوم ساکنه موس موسین و هوه هزفل حرف از از ساکن و هین اما یلحق و مصطفی و موقعی که به مصطفی داخل میشه یو غیر و هایلا مفایلون تغییرش میده به مفایلون کما ذکرنا اینو قبلا هم گفتیم که مستفعلن تبدیل میشه به مفایلون و به این مفایلون میگن مخبونه یک دیده بود زهاف الخبن و هوه هزفل حرف از ثانی از ساکن حرف ثان ساکن و هینما یلحق و مصطفالون یغیرها الامفائلون کما سکر دو زحاف و تی به اونی که داخل شه تفعیلی که میش داخل شه میگن چی؟ مطویه ذهاف و تی و هوا هز فلحرف ارامه از ساکنه حصف حرف چهارم ساکن این هم دیده بود و این هم مستفعلن یغیر ها مفتح علون مفتح علون که ما پس مستفعلن علون بشه مفا علون. مخبونه مصطف علون بشه مفتح علون. تو بحر رجع زمین رو دوتار داشتیم زهاف و تیه و الحرف از الساكنه عرابه از ساکنه و هی نما یلحق و مستفعلان یغیر و كما مفتران کما زکر علت و تزییل این دو تا دوتا حالا علت تزییل قاعدتاً به اون تفعیدهی که داخل بشه بشه میگن مزیله مزیلتون آه. این علت هم هست علت جاش زرب و عروسه اونا زحاف بوده سه علت و تزیه و هی اضافت و حرف ساکنن حالا آخر تفعیلت به یه حرف ساکن اضافه کنیم به آخر تفعیله در زرب یعنی اون فائلون ششم یه حرف ساکن بهش اضافه کنیم فائلون نون یه حرف ساکنی بعدش بیاریم خب قاعدتا میشه فائلان فتوغیه رو فائلون الا فائلان فائلان میشه فائلان پس اینطور میشه اون وزن بیتمون مستفعل مستفعل فائلون مستفعل مستفعل فائلان زرمینه دیگه این فائلان میشه فاعلان علت و تزییل و هیه اضافه تو حرف اضافه کردن حرفی ساکن اضافت و حرف ساکنه علا آخر تفعیلت فزر فتوغیه رو پس تغییر پیدا میکنه این تفعیله زر، الی فائلان الی فائلان خب چهار علت و قطعه اینم که اونم گفتن مزیله این شه مقتوعه قبلن داشتیم یه علت بعد و هیه حذف ساکنه الوتد المجموع و تسکین و ما قبله نگاه کنید فا ایلان که از فا درست شد حالا فا ایلان رو نگاه کنید یه وطد مجموع داره یه خط تیره داره که میشه سبب خفیف بعد یه یو یه خط تیره که میشه وطد مجموع این وطد مجموع رو شما ساکنشو حذف کنید متحرکشونو ساکن کنید تبدیل میشه به خط تیره قبلا داشتیم وطد مجموع رو تبدیل کنیم به خط تیره یعنی فاعلان بشه فعلا به یا حذف ساکنه الوتد المجموع حذف کردن ساکن و مجموع و تسکین و ما و ما قبلش رو تسکین کنیم و تسکین و ما کما ذکرنا و تسکین کردن ساکن کردن ما قبلش کما ذکرنا و هین اماتت خلال fair و موقعی که داخل میشه بر fair و هین اماتت خلال程 fair تغییر و حائلا فعلان تغییرش میده به فعلان فعلان علت القطع علت القطع وحیه هزف و ساکل و تدل مجموعه و تسکین و ما قبلهو کما زکرنام حذف ساکنه و مجموع و تسکین ما قبلش همونطور که ما قبلا هم علت بطر رو گفتیم و هی نماتت علی فائلون فهیر و حالا پس فائلون فائلون بش فاعلان میشه مزیله فائلون بش فعلن میشه مقتوعه مستفعلن بشه مفاعلن میشه مخبونه مستفعلن بشه مفتعلن میشه متویه خیلی راحت شد مستفعلن بشه مفاعلن مخبونه مستفعلن بشه مفتعلن متویه فاعلٌ تو ضرب بشه فائلان میشه مزیله فائلون بشه فعلن میشه مقتوعه تا اینجا همین خودم چارت کلمه انواع و سرید انواع بهر سرید یعتی هاز البحر و تام این بهر تام داره یاتی هاز البحر تامن یعنی هم شش ریش تو تفعیله داره مصطف الان فاعلون مصطف الان فاعلون چون اگر بخواد مجزوع بشه فاعلانش بیفته میشه مصطف الان مصطف الان اون موقع در واقع مجزوع رجز هم همین بود دیگه مصطف الان مصطف این پس بلاعا مجزوع نمیشه چون ما اونجا مجزوع رجز رو داریم. این فقط تامده. بلاشده نه؟ چون اگر مجزوع بشه فائلون ها میفته. فائلون ها بیفته میشه مصطف علان مصطف علان این وزن مجزوع رجزه. پس این فقط تام داره. دیگه مجزوع و مشتور و منهوک و اینها نداره. راحت شد. انواع و بحر سری یعتی هاز البحر و تام مند ولهو انواعون تام میاد ولی تامش انواعی داره اهم موها سلاستون مهمترینش ستاست که این زیر میکنیم. پس بحر سری سه نوع در تام دارد بحر سریع فقط تام داره تامش انوایی داره مهم بشین ستاییه که میخونیم و علیکه تفصیلها علیکه یعنی خوز بگیر تفصیلها این شرح این نوع رو دریافت کن پس انواع و بهره سری یعتی هاز و تام من و لهو اون و دارای است اهم مها مهمترینش سلاستون ستاست و اینکه تفصیل ها و بگیر تفصیل این رو یک از سریع و صحیح سریع صحیح یعنی سریع تام صحیح تام بدیگه چون بشه تام ندار میگیم کدومه؟ میگه فهوبه ماکانت تفعیلت و عروزهی علا فایلان عروزش فایلانه؟ و ضرب و حوک ازالک ضربش هم فائلونه ولا ها از زهاف اصلا ذهافی بهش داخل نمیشه فائلون فائلون هیچی توش میشه درشون ولا یلحبوها زحاف یعنی کاملا وزنش سالمه سالمه مستفعل علون مصطف مستفعل فائلون فا مصطف, علون، مصطف علون، فا همه ی بیتاش همینطوره هیچ چی ازش استفاده نکرد خب قطعا ببین که میگه ولا یلحقوها از زهاف هیچ زهافی بهش داخل نمیشه در شد قطعا علت هم بهش داخل نمیشه چون صحیح کن صحیح اونی بود که قابل ادامه ندارد خب یعنی علت قطعی توش نیست این نه تنها علت قطع ندارد بلکه زحاف هم بهش داخل نشده هیچ زحافی هم ندارد سالم سالمه و خبه ماکانت تفعیلت و عروزهی الان فاعلان. فایلان عروزش فایلانه و ضرب و حوکزالک ضربش هم و ولا یلحقها از ذهاب و این لاحق نمیشه هیچ ذهاب نه با قولل مثل قول آقای بحتری ملکیس و یحمی صوبه اصبالهی ولیس و یحمی خیصه اشبالهی کلمستعین المستعان لذی تمت لنن نعمه به افضالهی میوانی چقدر بهرش تنده یعنی این بهر به این تندی اگر شما بیت رو بخونید کاملا تند بودن و سریع بودن اون رو میفهمید. میگه مل قیس و یهمی صوب اسبالهی اسبل یعنی ارخا یعنی ارسله یعنی فرو فرستاد اسبال و سما یعنی فرو ریختن بارانش میگه مل قیس و قیس باران مفیده بارانی که به موقع با چه به اندازه باشه میگن باران مفید مل قیس و یحمیسو و میگه باران نمیتونه جاری کند صوب اسبالگی اون روان بودن خودش رو باران شدید که میاد چجوری روان میشه میگه بارون نمیتونه روانی اونو داشته باشه و لعیس و یعنی و من لیسو و ملقایس و یحمی و لایس و یحمی ات بجایه القایس و یحمی و لایس و یحمی خیص اشبالی و شیر هم حمایت میکنه، حفظ میکنه، روشو جنگل اشبالی اشبال یعنی اون طوله های خودش شبل خودش میگه باران در ریزش خودش نیست و شیر هم در حمایت خودش نسبت به بچه های خودش نیست کل مستقیم مثل این آقای مستقین بله ببینید ملقیس و یحمی صوبه اسبالهی ولیس و یحمی خیصه اشبالهی کالمستعین این یحمی و یحمی که با هم جناس دارن اولی یحمی یعنی یسیلو، دومی یحمی یعنی حمایت میکنه درست شد این دو طرح داشته باشید این یهمی خیصس بالی اشوالهی و یهمی صوب اسبالهی اینها حال هستند از برای القیس و الیس این کلم مستعین خبرش میگه باران نیست در روان شدنش و شیر نیست در حمایت کرده باران باران رحمت نجات میده شیر هم حمایت میکنه حفظ میکنه بچهای خودش رو در جنگلی که هست میگه این دوتا نیستن مثل آقای مستعین به الله خبره یعنی باران در قول خودمون لطف خودش و شیر در حمایت خودش مثل مستعین نیست. شیر حمایت که از بچه هاش میکنه مثل مستعین نیست که از ما حمایت میکنه. و باران در لطف و رحمتی که داره مثل مستعین نیست. کلم مستعین. مستعینی که المستعان لذی. مستعین مستعین بالله مستعان از طرف مردم. یعنی از مردم ازش کمک بخواه. مثل مستعینی که مورد کمک است، المستعان اللذی المستعان. مستعانی که تمت لنا نوع ما به مستعانی که تمت لنا انجام گرفته برای ما ان نوع ما نعمتها تمام شده برای ما نعمات به افضالهی با فضل و لطف او پس آقای بهداری میگه چی؟ میگه باران چطور سراشار از لطف و و شیر چطور از فرزندان خودش دفاع میکنه، حمایت میکنه این دوتا نیستن مثل مستعین و بالله در لطف و در حمایت مستعینی که مستعانه مورد استعانته یعنی ازش کمک خواسته میشه اون مستعین اسمه بهش میگونه المستعین و به الله برای خودش لقب گذاشته بود یعنی کسی که مستعینه کلمستعینه مثل مستعینی که المستعان مورد استعانت واقع شده یعنی ازش کمک خواسته شده یعنی ما ها ازش کمک میخواییم مستعانی که ای المستعان انلزی دوتا صفت مستعین مستعانی که تمت لنا نوع ما انجام گرفته تمام شده برای ما لطف و نعمات و انعما فائل تمت یعنی نعمات به افضالهی تمام نعمات برای ما هست با لطف و کرم او با لطف کردن به افضالهی متعلق به تمت پس این شعر رو فهمیدیم مل قیسو کالمستعین ببین؟ مل قیسو کالمستعین ملعیس و شیر کل مستقیم آه. حالا قیس یحمیس و با او اون موقع که شدیدن داره میباره باران اون موقع که شدید داره میباره و شیر اون موقعی که داره از بچه دفاع میکنه نیست این دوتا مثل مستعین مستعینی که مورد استعانت واقع شده و او کسی است که نعمات برای ما به واسطه ی فضل کردن و لطف کردن او تمام شده خب شعر رو فهمید مل قیس و یحمی صوب اسبالهی و لیس یحمی خیص اشبالهی کالمستعین المستعان لذید تمتلن نعم ها به افضادی خب بریم داخل تختی کردنش مل قیسو یح گفتم بین یحمی به معنای یسیلو روان میشه و بین یحمی به معنای یدفعو دفاع میکنه خب جناس هست جناس رشنگی هم هست جناس ناقص فقط اونها ها با ها با هم فرق که یکی های دو چشمه یکی های جید ملق ایسو یح مصطفی ادر می سو بأس با ایس ادر بالهی فا هر ستو سالم است مصطفی علون مصطفی علون فاریدن من لیس یه و لیس یه مصطفی می خیصه اش مصطفی علون سالم است مصطفی علون مصطفی با فعل سالم است پس این بیت مستفعل مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل کل مستعی کل مستعی مستفعلان سالم است نل مستعا نل مستعا تا آم، است. ن زی، فایل است. مستافعلون، مستافعلون فایل. تمت لنا ان نعما بود دیگه. میشه تمت لنن نعما تمت, تمت لنن لنا ان نعما الف لنا و الف لام ان میشه لنن تمت لنن مستفعلن الان نعما تمت لنن نعما به افضالهی به افضالهی. تمت لنن مصطفح نعما به اف مصطف علون زالهی فایلون فا پس مصطف علون مصطف علون فایلون فا مصطف فایلون فا بیت اول همینطور بیت دو پر. میگه اونی که اینجا میبینید اینه زفی ها زین البیتین ان جمیع تفعیلاته ما سالمتون به نزده ها اونجای که اینه همه ی تفعیلاتش سالم است از زهاف هیچ زهافی توش دیده نوش کاملا از زهاف سالمه الملاحظ و ها زین البیتین انجمیع تفعیلاته ما سالمتون من از زهاف خلا بیت سوم، چهارم پنجم ششوم هر بیتی که بیاد همینه مستفعل مستفعل مصطف مستفعل مستفعل مصطف پسمال غیس و یحمی صوبث بالی ولیس و یحمی خیسش بالی که مستعین مستعان الذي تم مثلا لاما به افزالی وقتی تبدتی کردیم اومد مستف ال مستف ال وال مستف ال مستف ال فالون توش نبود اینو بهش گفتیم: بهر سریع صحیح بهر سریع صحیح خب بریم سر قسم دوم این که راحت بود دومی سریع المزیل سریع المزیل اگه یادتون باشه مزیل گفتیم اونیه که تو ضربش درست شد به جای فائلون داریم فائلان تو ضربش به جای فائلون داریم فائلان خب بخونیم از سریع المزیل و ما ماکانت تفعیلت و عروزهی علا فائلون عروزش فائلونه خب باید هم باشه دیگه پس مصطف علون مصطف این عروض فائلون الا فلمسرر مگر در بیت مسرر چون تو بیت مسرر عروس تابع ضرب میشه اینو قبلا هم داشت. الا فلمسرر من تفعیلت و زربهی مزیله زربش مزیل است به جای شده فاعلان نه و قول ابن المعتز مثل قول آقای ابن معتز عبدالله ابن معتز نه قول ابن المعتزه یرسی اول قاسمه که اول قاسم نامی رو داشته مرسیه میکرد. پس این میشه مستفعل علون مصطف مستفعل فائلون مصطف, علون، مصطف علون حالا اگر یه موقع بیت مسرع باشه چجوری میشه؟ میشه مستفعل علون مصطف فائلان مستفعلن مستفعلن فاعلان مسرع که باشه عروس طابع زرد میشه حالا اگه یه دو بیتی بخوایم بگیم یه دو بیتی که بیت اولش مسرعه بیت دومش غیر مسرع چه جوری میشه این میشه مستفعلن مستفعلن فاعلان مستفعلن مستفعلن فاعلان این مال بیت مسرعش مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلون، مستفعلون فاعلان این مال غیر مسرر تا آخر رسیده. خوب چیز سختی نبود از سریع المزیل و هو و ماکان تفعیلت و عروزهی الا فاعلان الا فی المسرر مگر در مسرر و تفعیلت و زربهی مزیلتن تفعیل زربش هم مزیل است فاعلان نه و قول ابن المعتز یرسی اول غاسمه قدست و ناسو قدست و ناسو و کمال و نادت لعیام عین الرجال آیا بیت مسده داره یا نداره؟ بله ماطل کمال عین الرجال لام, لام. بیت مسرع پس این بیت باید اینطور در بیاد: مصطف علون مصطف علون فاعلان مصطف علون،, علون فاعلان اما دومی دیگه بیت مسرع نیست هاذا عبول غاسم فی نعشهی گومنزرو کیف سیرال جبال این باید بشه مصطف علون مصطف علون فاعلان مصطف علون مصطف علون, علون فاولان آره قدست و ناسو همه مردم با هم مساوی شدن یعنی هیچ کس برتری دیگه نیست همه یه سرد شدن و ماتل کمال و بلند ورتبیدی و کمال از بین رفت برتری از بین رفت همه دیگه یه دستند درفتید یه نه؟ یعنی اونی که برتری داشت کمال داشت فضل داشت و همه دیگه مثل همه برتر دیگه در بین انسان ها نیست قدس توان ناسو و ماتل کمالو و نادت الایام و روزگار داره با صدای بلند میگه نادت الایام نادا یو نادی نداء الایام و روزگان ایام داره با صدای بلند ندا میکنه عین الرجال مردان کو آ کوشن اون مردان بزرگ عین الرجال پس بزرگان کجان درست میگه اتفاقی افتاده همه کوتوله شدند بد و ناز و ما تل کمال و کمال بزرگواری از بین رفت روزگار داره ندا میده کجایند آن مردان عین ورجا حالا چرا اینطور شد؟ میگه هازا عبالغاسم فی نعشهی این اول است است یعنی تابوت چون این عبالغاسم است هازا داره اشاره میکنه اینی که شما دارید میبینید عبالغاسمه فی نعشهی این فی نعشهی حال است از داره هازا در حالی که در تابوته این عبالغاسم است. در تابوت خیش قومو پاشید انظرو خوب نگاه کنید کیفت حسیل الجبال چگونه کوهها به حرکت را افتاده چگونه کوهها ها داره حرکت میکنه با مرگ او پاشید ببینید که کوه روان شده در حرکت او قومو انظرو خوب نگاه کنید تعمل کنید چی رو تعمل کنن؟ کیف تسیر الجبال این کیفه حال است از برای الجبال تسیر الجبال فعل و این کیف تسیر الجبال محلم منصوب مفعول انظروست یعنی انظرو کیفیت تسیر کیفیت سیر که بهش میگن از نوع تعلیق که خوندید تو افعال قلوب وقتی که بر سر مفعول افعال قلوب جمله. عدوات صدارت طلب در میاد اون جمله محلن میشه منصوب مفعول اون فعل قلبی اون ضرور اون ضرور کیفت اصیر الجبار پس بدستوانی در لسا بوده دیگه بدستوان ناس و ما تلکمال و نادت العیام و عین الرجال حازا عبالغاسم فی نعشهی و منظر و کیفت سیر الجبال خب حالا نگاه کنید قد قدس. ببین قدس همزه استوا میفته دیگه پس خونده میشه قدس قدس تون استوا انلاس محلف استوا و الفلام انلاس میفته میشه قدس تون مفا الان مخبون است ناسو و ما مفتر مطوی است اینجا هم زحاف خب داریم هم زحاف تی مطفیه است تل کمال تل کمال فاعلان مزیر است مگه شما نگفتید که فقط توی ضربش میاد میگه چرا؟ میگه اینجا چرا بس توی عروزش اومده فاعلان میگه این بیت مسرعه دیگه در بیت مسرع عروز تابه زربش تل کمال فاعلان و نادتل مفاعلان ایامو ای ایاما ای مصطفح الان سالم است نر رجال ای نر رجال ای نر رجال فاعلان مزیل است مفاعلان مخبونه مصطفح الان سالمه نر رجال فاعلان مزیله این بیت اولش که بیت مصور بود هاذا ابن مصطفی علن هاذا ابن مصطفی علن قاسم فی قاسم فی موف نعشهی فائلون باش این باید اینجا فائلون بیاد چون به بیت اینکه بیتو نیست هازا عبول مصطفح هلون قاسمفی مفتعلون مطفیه است نعشهی فائلون مثل آخر قومون زرو قومون زرو مصطف الان سالم است کیف کیفتس مفتعلن نطمیه رول جبال رول جبال فاعلان مزیل است خب اینم باید زردش حالا تا بیت صدم اگر داشته باشه همین در میاد مصطف الان مصطف الان فاعلون فا مصطف علون، مصطف حالا نهایتش ممکن مصطف ها بشه مفاعلان یا بشه مفتعلان یعنی مخبونه بشه یا مطفیه دیگه چیز دیگه نداره دیگه همین روند ادامه پیدا میکنه به این میگن سریع مزیل سریع مزیل تمام شد بخونیم و البیتین اونی که شما با چشمتون میبینید در این دو تا بیت اینه ان ذها فی الخبن و تای این که دو زهاف خبن و تی ان ذهاف الخبن و تای این که دو زهاف خبن و تی قد دخل قد دخل که داخل شدن این دو تا زهاف الا تفیلات الهشمی به تفعیلات هشم داخل شدد و ما کانل بیتو میگیم خب اگر این بهره سریع مزیله و باید ضربش بشه فاعلان پس چرا تو بیت اول عروضش هم شده فاعلان جواب نمیده ولن ما کانل ال بیتو الاول و و چون بیت اول از نوع بیت مسرر بوده اش بهت تفعیلت و عروزهی ضربه شبیه شده تفعیله عروزش به تفعیله زربش و اون هم شده بگو با الان چیزی نداشت الملاح از و فیازین البیتین ان لزهاف الخبن و تی زهاف خبن و تای قد دخلا علا تفعیلات الهشب داخل شدن این دوتا تا بر تفعیلات هشب ولن ما کان ال و و چون بیت اول مسرع بوده اشبهت تفعیلت و عروزهی تفعیله عروزش شبیه به تفعیله زربه شد خب این هم تمام سومین قسم که آخرین قسم ما باشه در بحر سریع سریع مقتوعه یعنی علت قطع بهش داخل شده و گفتیم علت قطع اونه که فائلان رو تبدیل به فعلان میکنه فائلان رو تبدیل به فعلان میکنه برست شد؟ فائلان تبدیل به فعلان میشه یعنیتون باشه گفتیم که اون وطهد مجموع را که یه نونه یو یه خط تیره است تبدیل به یه خط تیره میکنه میشه فعلان پس فائلان میشه فعلان ببینیم بخونیم از سریع المقتوع و هوه ماکان تفعیلت و عروزه علا فائلان عروزش فائلان الا المسرع مگر در مسرع یعنی ای بیت مسرع باشه روزش میشه فعلان تابع زربش و قوه ماکانت تفعیلت و عروزهی علا فعلون. عروزش فعلون. الا فاعلان عروزش فاعلان الا المسرعه مگر در بیت مسرع و تفعیلت و زربهی مقتوعه. اما زربش مقتوعه است فعل زربش مقتوعه است یعنی فعل نه با قول شاعر مثل قول این شاعر فقط شما رو نگاه کنید و انما اولادونا بیننا اکبادونا تمشی علل عرضی بیت مسرع نداره اگر بیت مسرع داشت میشد مستفعلن مستفعلن فعلن مستفعل مستفعلن فعلن ولی حالا که بیت مسرع نداره قاعدتا میشه مستفعل مستفعلن فائلن مستفعل مستفعل فعلن تا آخرم همینطوره حالا خوب بود که ایشون یدونه دو بیتی مثل قبلی مثال میزد که بیت مسرع داشته باشه که اومده باشه مصطعلن مصطعلن فعلن مصطعلن مصطعلن فعلن دومیش شده باشه مصطعلن مصطعلن فاعل مصطعلن مصطعلن فعلن که مثل اون نوع دومش بیت مسرع داشته باشه ایشون حالا دارای بیت مسرع مثال نزده سریع مقتوع و ما کانت تفعیلت و عروضهی فاعلن فائلون الا فلمسرع و تفعیلت و ضربهی مغتوه ضربش مغتوه است فعلون نه قول شاعر مثل قول این شاعر ما و انما اولادونا بیننا اکبادونا تمشی علالعرض این؟ و انما اولاد اونا همانا این فرزندان ما یعنی این طور و غیر از اینم نیست که فرزندان ما بیننا حال است از برای اولادونا در حالی که بین ما این فرزندان ما که جلوی چشم ما هستند و بین ما هستن در حالی که بین ما هستن اولادونا اونا اکباد خبرشه جمع کبد اینها جگران ما هستند اینها های ما هستند خوب که جگران ما نیستند تشبیه دیگه بهش میگن تشبیه بلیغ اولاد ما شبیه شدن به اکباد ما چطور انسان بدون کبد زنده نمیماند میگه اینها هم جگرگوشههای ما هستند همه وجود ما هستند اولادنا مبتدا اکبادنا خبرش تمشی علی العرض حال است از برای اکباد میگه اینها جگرهای ما هستند اما تمشی علی العرض دارن رو زمین را میرن جگر ما هستند بیرون از بدن ما که رو زمین دارن را میرن پس گفت چی گفت جزین نیست انما که فرزندان ما در حالی که بین ما هستند پارهای جگر ما هستند در حالی که دارن رو زمین راه میدن دارن جلو چشمون راه میدن تمشی عدل لو حبت ریح و علابه اگر بعد به احدی از اونها به یعنی <متحد> باد نامولای ماتی باد ناملایم به یکی از اونها بوزه علا بعضه هم یعنی علا عهده اگر بادی بر یکی از آنها بوزه مثل اینکه که بگیم اگه خاری به پای یکیشون بره نوحبت ریخ و علا بعضه اگر باد بر عهدی از آنها بوزد اگر خار به پای یکیشون میسه که ما میگیم بره اونجا اگه نسیم ناملایمی بر اینها به وزد بر یکیشون لمتنعت عینی عن القمزی لمتنعت امتناع میکند این لام امتنعت با لام آمده جواب لوه لو عدات شرطه شده نه؟ شرطه اما شرط ممتنه یعنی گفته اگر به فرض محال یعنی راضی نیست که همچین خاری به پای یکیشون بره انگار گفته اگر خدای نکرده به پای یکیشون خاری رود اگر به فرض خاری بر پای یکی از اونها بره نسیمی بر یکی از اونها باد ناملایمی بر یکی از اونها بتابت لمتنعت ممتنع میشه امتناع میکند چشم من ان القمز القمز یعنی ان نو چشم من دیگه خواب دست نمیره مثل که میگه اگه خار به پای یکی شون بره دیگه خواب از چشم من میره مم. پس میگه این اولاد ما در حالی که بین ما هستند مثل پکچگران ما هستند که دارن رو زمین راه میرن جز این هم نیست بنابراین اگر خدای مکرده نصیم ناملایمی بر یکی از اونها بوزه وزه او اگر یکیشون کوچیکترین مشکلی پیدا کنه چشم من از خواب دیگه امتناه میکنه. دیگه خواب به چشم من دارد لمتن عت عینی عن القمسی و لا اولادنا بینلا اکبادنا تمشی العظ، لوحبت الریح و علا بعضه هم لمتن عینی ان القمس مهمش که ما میخونیم بعدا خونیم تمشي على تمشی علال عرضی لو حبت ریه على علابازه لامتن عت عن العقمسي. خب ما این بيت رو فهمیدیم. و, و اين ما اولاد دنها بينلا اکبر لو حبت ریه على علابازه لامتن عت عن العقمسي. خب این چون بیت مسرر نداره هر دو بیتش باید اینطوری در بیاد مستفعل علون مصطف مستفعل فائلون مصطف مستفعل مصطف علون مستفعل مصطف علون حالا بخونیم ببینیم همینطور میشه یا؟ و این نما و این نما مفایل و است او لا دونا، لا دونا، مصطفی علی سالم است. بی ننا، بی است. اک با دونا، سالم است. تمشی علل. مصطف سالم است عرضی فعلن این مقتوب است این باید شد که بهش بگیم سری مقتوب عرضی اکبر دونا مصطف علون تمشی علل مصطف علون عرضی فعلن. خب این بیت اول لو حب بد لو حب مصطفی علون ریهو علا مفتعلون ریهو علا مفتعلون اولی مصطفی علون سالمه دومی مفتعلون مد بعضهم بعضه سالم است چون بیت مصرم نیست خب عروض شده فائلون تممت لم تنعت، لم تنعت، لم تنعت، لا إم تنعت بدي، لم تنعت، لم تنعت، مفتعل عيني أنيل، عيني أنيل، مصفعل، قمضي فعل، قمزي فعل قمزي فعل خب هر دو بیت در اومد مستفعلن مستفه، الون، فاعلن فاعلن مستفعلن الون فاعلن، مستفه، فاعلن فاعلن تا آخرم همینطوره چون بیت مس هم نداشت عروض تابع زرد نشد و اگر این قصیده صد دو بیت دیگه هم داشته باشه همین است اینو بهش میگن سریع مقتوع سریع مقتوع خب اگه بین این ستا نگاه کنیم یعنی سریع صحیح با سریع مزیل درست شد با سریع مزیل با سریع مقتوع قاعدتا سریع صحیحش خیلی راحت تره چون هیچی نداره یعنی نه علت قطع توشه نه علت تزیین توشه نه زهاف توشه خیلی راحت شاعر شعر توش گفته همه هم سر جای خودشه مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فائلون،, فائلون تا آخر نه بیت مصور توش فرق میکنه با غیر بیت مصور لذا بحر سریع صحیح توی این بحر از سنوعش بحر سریع صحیح که اولیش باشه هم تو توشه گفته میشه هم بیشتر از همه استعمال داره استعمالش بیشتر خلاصه بحر سریع رو داشته باشید خلاصه تو بحر سریع خلاصه این بحر سریع وحروس سریع یعتی تامند قالبند این قالبند رو میگه چون غیر قالبش رو ما اصلا نخوندیم من نمیخوایی چون چون بهتونم گفتم که اگر ما بیایم بخوایم از غیر تام بگیم غیر تام باید فایلون بیفته، و وقتی فایلون بیفته میشه مصطف الان مصطف الان مصطف الان مصطف الان و این میشه همون مجزوعه بگید رجز و ما اگر این وزن رو بخوان تو مجذور رجز داشتیم خلاصت و بحر سری بحر و سری یتی تام من قالبند و یت خلو زهافا الخبن و تی و داخل میشه دو زهاف خبن و تی خبن حذف دومین حرف ساکن بود تگ ح چهارمین حرف ساکن بود به مست الان که داخل می شد قبل می شد میشد طی شد و یت خل و زه ها قبله و تی الان مستان فیه جوون مست الان در ه دیگه مست ال مستف الان فاعیلون مستف الان مستف الان, مصطفح الان. مصطفح الان و تدخل و زربهو علتان و به زربش هم دو علت داخل میشه هما علت و تزییل که یه نونه ساکن اضافه میشد فایلون میشد فاعلان و علت القطع که وطد مجموع تبدیل میشد به سبب خفیف فاعلان میشد فاعلان فاعلان مزیله فعلون مقتوه و تدخل ضربهو و داخل میشه به ضربش علتان دو علت هما علتو تزییل فاعلان و علت القطع و القطع فعلان فسری خب گفتیم که همه شد یعنی ما دو خط بیشتر نخوندیم بنابراین بهرسری ف یعنی بنابراین پس از سری سری ازن پس سری در این هنگام اینه لهو عروزون واحدتون یه دونه عروز بیشتر نداره. چه تو صحیحش چه مزی... مزیلش چه مبتوعش یه دونه عروز داره فایلون و یه فایلون اما سن و داره اگه ضربشم بود فایلون میشه سریع صحیح اگه ضربش بود فاعلان میشه سریع مزیل اگه ضربش بود فایلان میشه سریع مقدور پس بنابراین وزن بحر سریع عبارت است از اینکه عروض او یه دونه بیشتر وزن ندارد فایلان اما ضربش به سه قسم تقسیم میشه یک بار ضربش هم میشه فایلون این سریع صحیحه که گفتیم زیاده بعد ضربش میشه فعلان گفتیم این سریع مزیله داد شد و ضربش میشه فعلن که گفتیم این سریع مقتوعه و ما سه بیشتر نداشتیم پس تقسیمات بهر سریع بر اساس تقسیمات بهره سریع بر اساس ضربش صورت میگیره نه بر اساس عروزش چون عروزش یه دونه بیشتر نیست فاعل این مطلب اول دو تا زهاف بهش داخل میشد خبن مستفعلن میشد مفاعلن و تی مستفعلن میشد مفتاعلن و غیر از این دو تا زهاف هم نداشتیم دو تا ملت داخل میشد تزیل و قطع تزییل ضرب رو فائلان رو میکرد فائلان قطع ضرب رو فائلان رو میکرد فعلن همین سه قسم هست و فقط تام دارد و غیر تام ندارد و علت اینکه غیر تام هم ندارد گفتیم اینه چون اگر قرار باشد فائلن که عبارت هست از عروض و ضرب او بیفته و بشه مجزو مجزو او میشه مستفعلن علون مصطف مستفعلن میشه همون مجزو رجز و این دوتا یکی میشه خب ما اگه بخواد استفاده کنه همون مجزو رجز رو که جلو گفتیم بهش میگیم مجزو رجز استفاده کرده پس بنابراین بهر سریع نیگر دیر تام ندارد و اگر شعرا آمدند حالا گوشه کنار براش مجزوع درست کردن یه چیزی بالا پایین گفتن ما اون رو نه نیاز داریم بخوانیم و نه می‌خونیم و قابلیت حفظ هم بگید ندارد قابلیت حفظ هم ندارد خب بحر سریع تمام شد بحر بعدی بهر متقاربه که بهر دهم باشه که خواهیم انشالله خوند و نسبتا بهر ساده هم هست الله برای جلسه بعدمون همه تونو به خدای صبحان می سپرن. نگران نباشید الله تعالی همه چیز خوبه توکل کنید به خدا و در پناه خداوند موفق و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات